به نام خدای یگانی مهربان سلام. افسانه بنا بر نظریه روانشناسان و تاریخشناسان خاستگاه اساسی ترین نیازهای بشریه. افسانهها برخلاف شکل‌های دیگر ادبیات، آدمی رو به سوی کشف خوییت و استعداد ذاتیش رهبری میکنه و به اون یاد میده که برای تکامل بیشتر سرنوشت یا منش او چه تجربه هایی ضروریه و ما افسانهای ای رو از مردم ترک من براتون نقل میکنم به نام افسانه اسب دریایی برگرفته از کتاب افسانه های مردم دنیا ترجمه عبدالرحمن دیجی امیدوارم که شنیدن این افسانه زیبا در روزگاران گذشته پیرمردی مردی زندگی میکرد که سیاد بود روز گارش رو با سید ماهی سپری میکرد پیرمرد پسری به نام قاراغولی داشت که جوان زرنگ و باهوشی بود در یکی از روزها پیرمرد حال مساعدی برای سید ماهی نداشت بنابراین به قاراغولی گفت آه بسرم امروز حال خوبی ندارم بهتر تو به جای من به دریا بری. قاراغولی قبول کرد و تور ماهیگیری رو برداشت و به دریا رفت. اون چند بار تورش رو به دریا اینداخت و بیرون کشید ولی خبری از ماهی نبود که نبود. با ناراحتی گفت: «آه خدایا. پدرم با امید منو رو روونه دریا کرده. اگه اگه دسته برگردم. اون وقت چه جوابی دارم که بدم؟ نه؟ بهتر یه بار دیگه امتحان کنم شاید این دفعه شانس با من یاری کنه و چند تا ماهی به تورم بیفته و پدرم خوشحال بشه بعد یه بار دیگه تور ماهیگیریش رو به دریا انداخت و منتظر موند چند دقیقه بعد خواست تور رو از دریا بیرون بکشه احساس کرد تور سنگینه وقتی تور رو با زحمت بیرون کشید دید که بله یه ماهی تقریبا بزرگی توی تورش افتاده با خوشحالی ماهی رو برداشت و به طرف خونه براه افتاد. پدر وقتی سید پسرش رو دید فهمید که این ماهی با ماهی های دیگه فرق داره و سری درونه خیلی تلاش کرد تا بلکه بفهمید که چرا این ماهی اونقدر بزرگه ولی چیزی نفهمید بالاخره تصمیم گرفت که پوست ماهی رو بکنه و وقتی این کار رو کرد دید که توی شکم ماهی یک کرعص زیبا خوابیده کرعص که هنوز لاغر و ضعیف بود غاراغولی با دیدن کراعصب زیبا از پدرش پرسید، پدرشان، این تی که نوع کراعصبیه؟ پدر جواب داد، پسرم، این اسب از نسل عصبهای دریاییه بعد به پسرش گفت که بره و برای اسب مقداری آب و علف دیره. غاراغولی هم فورا رفت و با مقداری آب و علف نزد پدرش برگشت. پدر روی کره آب ریخت و بدنش رو خیس کرد و بعد به اون مقداری علف داد. کراعصب کم کم سرحال اومد و روی پاهاش داد. خلاصه، غاراغولی از اون روز به بعد هر روز سر موقع آب و علف به اسب میداد گذشت و حالا دیگه غاراغولی جوون برومندی شده بود و اسبش هم یه تیز تیزپا و چالا. روزی از روزها قراقولی از پدرش اجازه خواست که به گشت و گذار بره. پدر هم اجازه داد. قراقولی سوار اسب دریایی شد و از کوه‌ها و صحراها گذشت. رفت و رفت و رفت تا اینکه توی راه به سه مرد شکارچی برخورد کرد. خب حالا این شکارچیا کی بودن براتون میگم. یکی از این شکارچیا پادشاه مصر بود و دو نفر دیگه وزیرای اون بودن اونا با دیدن قاراغولی به اون نزدیک شدن و پرسیدن ای جوون، تو کی هستی و میخوایی به کجا بری؟ قاراغولی فکر کرد بهتره بگه که فقیر و تنهام بعد جواب داد من قاراغولی هستم پسری فقیر و تنها پادشاه پرسید اینجا چه کار میکنی؟ اومدی شکار؟ قاراقولی جواب داد من میخوام اگه زن و مردی بی فرزند پیدا کردم اون وقت فرزند اونا بشم پادشاه که از برومندی قاراقولی خوشش اومده بود فورا گفت آه من فقط یه پسر هم سن و سال تو دارم ولی خیلی دوست دارم یه پسر دیگهم داشته باشم. و بخوای بخوایی میتونی فرزند خونده من بشی؟ قاراقلی با خوشحالی گفت این خیلی خوبه من فرزند خونده شما میشم ولی ولی پادشاه با تحجب پرسید ولی چی پسرم ها قاراقولی جواب داد اصبم شما باید قول بدین اسبم رو بدون آب و علف نذارین پادشاه لبخندی زد و گفت باشه پسرم قول میدم که به فکر اسب قشنگت هم باشم و بعد اضافه کرد و گفت حالا بهتر زودتر به قصر من بریم تا تو رو عنوان پسر خوندم به همه معرفی کنم و چند دقیقه بعد همه به طرف قصر پادشاه رفتند. خلاصه، غارا افسانی ما روزگار تازهی رو بنوان پسخونده پادشاه آغاز کرد. روزی از روزها پادشاه جشن بزرگی برپا کرد. پهربون توی میدون کشتی حاضر شدن و با هم مسابقه می ددن. از پا دوره هم جمع شدن و برای مسابقه و تاخت و تاز آماده شدند قراغولی تصمیم گرفت که توی مسابقه شرکت کنه. پسر پادشاه هم تیز رو ترین پادشاه رو سوار شد و در صفه اونا قرار گرفت. مسابقه شروع شد. پسر پادشاه خیلی زودتر از همه جلو زد. اما قراغولی همراه با دیگرون تاخت و نزاشت که اسب در شروع مسابقه تند بتازه. آخرای مسابقه بود که افسار اسب رو شل کرد و گذاشت که اسب با بیشترین سرعت بتازه اسب دریایی انگار که بال گشوده باشه جهید و مثل باد دوید و همه اصف ها و اسب پسر پادشاه رو پشت سر گذاشت و مثل تیر رها شده از کمون از خط پایانی مسابقه گذشت همه تماشاگرها از حیرت دهنشون باز شاه از دیدن این صحنه به خشم اومد و دستور داد که مسابقه دیگری میون اسب تیروی خودش و اسب دریایی قاراغولی بذارند. خلاصه مسابقه دیگری برپا شد پسر شاه سوار اسب شاه شد و قاراغولی همچنان سوار بر اسب دریایی بود این بار قراقولی افسار اسب را هم نکشید و اسب دریایی اون چنان تاخت که انگار پرواز میکرد. در حالی که پسر پادشاه به نیمه راه رسیده بود اسب اون از خط پایانی مسابقه گذشت پادشاه این بار برتر بودن اسب دریایی قراقولی رو پذیرفت و به خوبی از اون استقبال کرد و هدایای زیادی به عنوان جایزه به اون بخشید ام اما زن پادشاه که به تحمل شکست پسرش رو در مسابقه نداشت به خشم اومد و تصمیم گرفت قراقولی رو از میون برداره چه جوری خب تا اینجا افسانه رو براتون نخ کردن منتظر باشید تا براتون آن پادشاه تصمیم به نابودی قراقولی گرفته بود. برای همین هم به سراغ ندیمش رفت و از اون خواست که پیش طبیب قصد بره و زهری رو برای اون بیاره. قراقولی افسانی ما بی خبر از همه چیز، یه روز رفت سراغ اسبش با تعجب دید که اسبش در حال اشک ریختنه. با نگرانی پرسید: چی شده اسب تیزپای من؟ چرا گریه کنی؟ اسب جواب داد: تو خبر نداری زن پادشاه میخواد با زهر تو رو مصموم کنه تو نباید از غذای اونها بخوری باید حواس جمع باشه قراغولی یاد پدر و مادرش افتاد که چقدر دلسوز بودن بعد به اسبش گفت باشه باشه اسب عزیزم باشه من به حرف تو اطمینان دارم مطمئن باش که لب به غذای اونها نمیزنم حواسم جمه جمه ساعتی بعد خدمتکاران غذای قراقولی رو آورده. قراقولی با اون که خیلی گرسنه بود اما لب به غذا نزد و برای اینکه زن پادشاه فکر کنه که قراقولی تمام غذا رو خورده دور از چشم خدمتکاران غذاش رو دور ریخت زن پادشاه منتظر بود که خدمتکارها به سراغش بیان و خبر مسمومیت و مرگ قراقولی رو به اون مژده بدن ولی ساعتی گذشت و خبری نشد زن بلند شد و سراغ قراقولی رفت و دید که قراقولی افسانه ما سالم و قبراغ توی اتاقش نشسته و داره زیر لب آوازی رو زمزمه می‌کنه زن به خشم اومد ولی چیزی نگفت و فهمید که سری در کار این اسب دریایی با خودش گفت آه از زیر سر این اسب دریایی باید اونو از بین ببرم تا این اسب زند است نمیتونم قراقلی رو از میان بردارم زن بعد باز هم رفت سراغ ندیمش و از اون خواست زن طبیب با تجربه ای رو پیدا کنه تا از اون چاره ای میخواد زن پادشاه زن طبیب پیری رو پیدا کرد و به اون گفت که قصد داره عصب دریایی قراهولی رو از بین ببره و از اون خواست که کمکش کنه به پاداش خوبی هم بکره. زن طبیب گفت تو باید خودتو بیمار نشون بدی توی رخت خواب دراز بکشی و آه و ناله کنی بعد از پادشاه بخوا که به دنبال من بفرسته تا بیاموت رو درمون کنم وقت من خودم میتونم چیکار کنم تو قصه نخور روز بعد زن در بستر بیماری افتاد و شروع کرد به آه و ناله کردن خدمتکارها و ندیمهها به پادشاه خبر دادن که چه نشستی با بانوی قصر سخت بیمار شده بل پادشاه با شنیدن این خبر رفت سراغ زنش و دید که آه و ناله زن تمام قصد رو پر کرده زن با دیدن پادشاه با ناله گفت آه آه ای دارم از درد میمیرم دستور بده زن طبیب پیر رو برای مالجه من به قصد بیارن آه مردم از درد. به دادم پادشاه فورن دستور داد که زن طبیب پیر رو به بالین همسرش بیارن در عرض چند دقیقه زن طبیب پیر در قصر حاضر شد و با دیدن زن پادشاه سری داد و گفت جناب پادشاه باید به عرضتون برسونم که بانوی قصر به درد بدی دوچار شده پادشاه با نگرانی گفت چه دردی؟ چاره اون چیه؟ زن طبیب پیر گفت دردون فقط یه راه درمون داره. پادشاه پرسید چه راهی؟ زن طبیب گفت باید هر چه زودتر گوشت اسب دریایی به اون بدیم تا بخوره. دوای درد اون فقط گوشت اسب دریاییه وگرنه هیچ وقت درمون نمیشه. پادشاه به یاد اسب دریایی قراغولی افتاد. و فورا به غلامان قصر دستور داد که برن و اسب دریایی رو گردن بزنن و مقداری از گوشت اون رو برای بانوی قصر بیارن خلاصه غلام ها هم دستور پادشاه رو اطاعت کردن و به استبر رفتن تا اسب دریایی قراقولی رو گردن بزنن خلام های قصر وقتی به استبل رفتن دیدن که حسبی زیبا و کشیدن دام توی استبل در حال اشکریختنه خلام دلشون برای از سوخت و از گردن زدن اون پشیمون شدن ولی یکی از خدمتکارها از راه رسید و به اونها گفت چرا ویستدین؟ مگه نمی بینیم درمون بانوی قصر در خوردن گوشت این اسب دریایی ها؟ منتظر چی هستین؟ خلامان گفتند ما دلمون نمیاد این اسب زیبا رو گردن بسنیم حیفه خدمتکار گفت شما مگه از جونتون سیر شدین که از دستور پادشاه سرباز میزنین مگه نشدیدین که درمان بانوی قصر فقط در خوردن گوشتین اسبه ها؟ اگه به موقع گوشت اسب رو به اون نرسونین حال اون بدتر میشه اون وقت گناه مردن بانوی قصر به گردن شماها میفته و عاقبتتون معلومه دیگه خلاصه اونقدر گفت و گفت که غلامها ها ترسیدن و مجبور شدن پاهای اسب رو با تناب ببندن. بعد اون رو روی زمین خوابوندند و آماده شدن که گردن اسب بیچاره رو بزنن. حالا بشنوید از غاراغولی. غاراغولی وقتی از دستور پادشاه مطلع شد سراسیمه نز اون رفت و با التماس گفت قربان قربان خواهش میکنم اجازه بفرمایید. برای آخرین بار اسبم رو ببینم اگه این لطف رو در حق من انجام بدین تا آخر امتیون شما هستم خواهش میکنم پادشاه سری تكون داد و گفت باشه میتونی به استبل بری و برای آخرین بار اسبت رو ببینی فقط زودتر که وقت چندانی نداریم قاراغلیم به استبل رفت تا برای آخرین بار اسبش رو ببین قراغولی وقتی وارد استقب شد فورا تناب پای اسب رو باز کرد غلامان اعتراض کردند ولی قراغلی بی اعتناب اونها اسبش رو از زمین بلند کرد و بر پشتش سوار شد اسب به قراغولی گفت چیکار کنیم قراغولی آهسته گفت باید فرار کنیم اسب گفت پس محکم روی پشتم بشین بعد شیههٔ بلندی کشید و به تاخت از محوطهٔ قصر بیرون رفت و شهر رو پشت سر گذاشت زن پادشاه وقتی از فرار قراقلی و اسبش مطلع شد فورا از رختخواب بیرون اومد و انگار نه انگار که تا چند دقیقه قبل صدای آه و نالش تمام قصر رو پر کرده بود پادشاه و غلامان و زن طبیب پیر با حیرت بندگی نگاه میکردن و نمیدونستن چی کار کنن. بعد غاراغولی افثانی ما به کمک اسب دریایی وفادارش تصمیم میگیره پیش پدر و مادرش برگرد. افسانه اسب دریایی رو از افسانه های مردم ترکمن براتون نقل کردم. برگرفته از کتاب افسانه های مردم دنیا با ترجمه از عبدالرحمن دیچی. افسانه ها علاوه بر اون که از لحاظ چگونگی ساخت و ترکیب جالب توجهن به ما امکان میدن که روند مهاجرت مزامین اساتیری رو دریابیم و ببینیم چگونه هر قوم و ملتی از این مزامین سود بردن. با خوندن بعضی از افسانه ها به سادگی میفهمیم که چگونه افسانه ای قادر بوده وضع مردمی رو که به علت بیباوری و غارت شدن زادگاهشون احساس حقارت و خاری می کردن دیگرگون و متحول کنه هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدا بردار زاهدی تایی کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانی دیگر بدرو